فصل شش زیست تاریخی و تأثیر آن بر خلقیات اجتماعی یک پرحادثه بودن، ناامنی، ناپایداری، آشوب و هرج و مرج در فصلهای پیش گفته شد که رفتارها و خلقیات گروه های اجتماعی از طریق انواع راهبرد سازگاری با واقعیتهای زیست تاریخی شکل می‌گیرد، انتقال میابد و نهادی نمی شود. نحوه زیست تاریخی هر جامعه یا گروه اجتماعی باستابی از شرایط و مقتضیات آن است. فرهنگ گرانبار از گذشته و البته باردار آینده است. به این معنا فرهنگ های متفاوت لزوماً به معنای پیشرفته یا عقب مانده بودن و یا خوب و بد بودن اهالی آن نیست، بلکه تفاوت فرهنگ ها به طور عمده منعکس کننده شرایط تاریخی زندگی مردم این سیاره است. بگونه ای که اگر در یک تاریخ فرضی مردم اروپا به خاورمیانه میانه و مردم چین به ایالات متحده انتقال داده شوند، فرهنگ آنها نیز جا به جا می شود. رجوب تاریخ به ما در فهم رفتارهای مردمان و خلقیات اجتماعی آنان یاری می رسند، برای مثال متوجه میشویم باز تولید استبداد در یک جامعه میل مزمن و روند قالب بوده و رفتارها و روحیات متناظر با خود داشته است. در واقع این خلقیات حلقه از مجموعه راهبردهای سازگاری مردم بوده و از واقعیت‌های زیسته تاریخی آنها نشأت میافته شکل می‌گرفته، انتقال پیدا می‌کرده و نهادی نمی شده است. گویا استبداد به ناگزیر انتخاب معیشتی آنان بود البته انگاره های متعالی اندکی از جمله در جستجوی رهایی بودند داشتند اما واقعیت های زیست اجتماعی سنگینی می کرد و نقش خود را بر جامعه و فرهنگ آنان می زد. در یزدانشناسی شناسی ایرانی سنویت بسیار در خور تأمل است و گویا بازنمایی سنویتی است که میان منظرهای های و معرزهای های اهریمنی در این سرزمین وجود داشت. در بندهشن آمده است: هرمزد روشنایی و دین را آفرید و نخستین انسانی را که کیومرث بود و اهریمن آز را. هرمزد گفت: شما نیاکان بشرید، باید نیکوکار، نیک‌اندیش و نیک گفتار باشید. صنویتی که در دین تاریخی ایران وجود دارد باستابی از دوگانگی میان اخلاق و مناسبات ماست ارزشهای اخلاقی ما راستگویی میخواهد اما مناسباتمان به دروگوی میل دارد تاریخ ما پرحادثه بوده این واقعیت جزو متواترات تاریخ ماست تاریخ ما پر از ناامنی بینظمی و ناپایداری بوده است این امر در تاریخ ما به شکل نهادینه‌ای خود را نشان می دهد. بر حسب آمار، حدود 1200 جنگ با مقیاس بزرگ و هزاران جنگ منطقه‌ای و محلی در تاریخ ایران رخ داده است. ما سر راه اقوام و حکومت و در معرض هجوم و تجاوز پیوسته قرار داشته ایم و درگیر کمیابی امنیت بوده ایم. چه بسا سیکل معیوب حوادث، ناامنی و ناپایداری سبب قلبه روحیه سپاهیگری در ایران شده است. به طوری که حتی با مراجعه به برخی شواهد میبینیم، نجبای ماد و پارس بیشتر تربیت نظامی داشتند و امور مربوط به اداره حکومتها به دست دبیران و محاسبان بابلی و غیره بوده است. الگوی زیست ما به دلیل پرهادث بودن شرایط زیست، اغلب به صورت انسان کوچنده بوده است. مستنداتی از هزاره پنجم پیش از میلاد در دست است. در دشت سیالک، شواهد زیادی از زندگی دامداری به منزله رکن اصلی زندگی ساکنان، ظرف های نقشدار با تصاویر مردان جنگجو با کلاه خود که در حال پرتاب تیر به سوی جانوران برای شکار هستند و یا تصاویری از جنگاورانی که بر پشت اسب با قول میجنگند مشاهده می شود. ها در هزاره سوم پیش از میلاد در جنوب و غرب ایران، دشت شوش و امتداد طبیعی بین و نهرین را شکل دادند که پادشاهی عوان نامیده شد ولی با تاخت و تاز اقوام زاگروسنشین یا گوتیان مواجه شدند یورشگران تا حدود یک قرن ربع کل منطقه را ویران کردند و شیرازه پادشاهی را گسستند علاوه بر این، ایلامی‌ها درگیر جنگ‌های دیگری با سلسله سامی سارگون از فرمانروایان آکد آشور شدند. بخت و نصر، پادشاه بابل، نمونه مشهورتری است. در دوره او آشوب و ناامنی بر اثر تهاجم، درگیری، منازعه، ناپایداری، فروپاشی و هرج و مرج بر منطقه سایه انداخت. از 1500 قبل از میلاد مهاجرت آریاییان به ایران به دلیل دشوار شدن شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاهها از قسمت های شمالی فلات آغاز شد ماتها در شمال غربی پارسها در جنوب و پارتها در حدود خراسان آنطور که هرودوت روایت می کند، اقوام دیگری هم مثل باختریها سقدیها و سکاها وارد این فلات شدند این بخش از جهان که میانه دنیا نام دارد سر راه حوادث و درگیری در آن یک میل پایدار است هر یک از اقوام آریایی که از دو سوی خزر وارد فلات شدند با سایر مهاجران و بومیان جنگیدند و پس از سکونت در فلات نیز مرتب با بیابانگردها و اقوام مختلف سکا، هون، هپتال و ترک درگیر شدند در واقع میتوان گفت روایت های ایرانیان و تورانیان بر برساخته این آوردگاه دائمی در فلات است. این مهاجران، چوپانند و کشاورزی در میانشان جایگاه ناچیزی دارد. آنها از راه شمشیر، ستیز و سربازی زندگی می کنند. آنطور که در گزارش های هرودوت، گزنوفون، توسیدید، استرابون و دیگران نقل شده، به کودکان و نوجوانان پارسی از پنج تا بیست و چهار سالگی تنها کمانکشی، پرتاب نیزه، سوارکاری و راستگویی میآموزند اقتضای شرایط این است که این کودک باید بتواند در این شرایط زیست پرهادسه راز بقا را از طریق درگیری و رویارویی جستجو کند. در دوره مادها 600 سال پیش از میلاد درگیری و جنگ شدید و خونین میان مناطق مادنشین و آشوریان جریان داشت از نیمه سده ششم تا سال 330 قبل از میلاد یعنی دوره هخامنشیان با اینکه تحول دامداری به کشاورزی شروع شد همچنان مشکل آب وجود داشت و این خود یک مصیبت بزرگ بود در این دوره نیز جنگ مسئله مهم و قصه همیشگی بود لشگرکشی کمبوجیه جانشین کوروش زمینه را برای شورش های همگانی فراهم کرد. در کتیبه بیستون از زبان داریوش آمده است زمانی که من بابل بودم این ایالات از من برگشتند. پارس، خوزستان، ماد، آشور، مصر، پارت، خراسان یعنی مرو گوش و افغانستان یا مکائیه. این مطلب نشان نشاندهنده نوعی واگرایی در این شرایط زندگی با ویژگی خاص از جمله موقعیت جغرافیایی و تاریخی در فلات است. داریوش از نهم مهر 522 تا نوزدهم اسفند 520 قبل از میلاد به سرکوب جنبش های معارض پرداخت. سپس جنگ های ایران و یونان آغاز شد. او در 490 قبل میلاد در جنگ معروف ماراتون شکست خورد. تصور کنید این جنگ ها چه هزینه هایی برای کشور داشت و الگوهای رفتار و اخلاق مردمی که در این سرزمین با این واقعیت های زیسته تاریخی درگیر بودند چگونه می میافت؟ سپس حمله اسکندر و دوره سروکیان از سی تا 150 قبل از میلاد را شاهدیم بعد از مرگ اسکندر فتوحات وی بین سرداران تقسیم شد سپس در دوره اشکانیان جنگ های ایران و روم به علاوه اختلافات داخلی جریان داشت آنگاه ساسانیان حاکم شدند سرکوب و قتل مانی در این دوره آغازی برای مانیکوشی بعدی بود بسیاری از مردم به نام زندک یا زندیق کشته شدند از آن سوی حمله اقوام زردپوست هان اتفاق افتاد سپس جنبش مزدکی، قتل او و سرکوب پیروانش و بعد جنگ های طولانی ایران و بیزانس پیش آمد. ملاحظه می شود که جنگ همچنان یک میل قالب و نهادینه است. سپس نوبت به حمله عرب و جنگ های قادسیه، مدائن، جلولا نهاوند و مابقی قضای می‌رسد. به روایت بیرونی وقتی قطعیبت ابن مسلم سردار حجاج ابن یوسف بار دوم به خارزم رفت و آن را بازگشود هر کس را خط خارزمی می و از تاریخ، علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت بیدریق از دم تیغ گذراند و موبدان و هیربدان قوم را یکسر سر کرد و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم ام می ماندند و از خط و کتابت بیبهره شدند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از میان رفت در دوره اسلامی از میان حدود 150 خاندان تنها چند خاندان مثل سلجوگیان، مغولان، صفوییان، افشار و پهلوی در سراسر ایران حکمرانی کردند بسیاری بر یک یا دو ولایت فرمان میراندند در دوره ملوک و توائف، به خصوص بعد از حمله مقل و تیموریان گاه همزمان تا حدود 20 دودمان بر ایران فرمان میراندند این واگرایی در دوره اسلامی سرزمینی مستعد منازعه، بیگانگی و تشتت طایفه‌ای، قومی و مذهبی تا حد هرج و مرج به وجود آورد که یا مورد تهاجم و تجاوز پیوسته خارجی بود و یا درگیر دائم با یکدیگر حاکمانی بیگانه با فرهنگ این سرزمین مثل غزنویان و سلجوقیان بر آن سلطه پیدا کردند و به دلیل همین بیگانگیها ها تسلط و استبداد و واگرایی ها فزون از حد بود بعد نوبت به یورش مغل رسید با حمله مغل عمدهترین ترین نواحی ایران از جمله قزوین، همدان، اردبیل، مراغه، نیشابور، ری و توس از بین رفت و ایران صحنه قتل عام و تاراج وسیع شد با حمله تیمور لنگ باقیماندهٔ شهرهای ایران نیز نابود شد تهاجم مغلان سیر انهتاتی پیشین را تشدید کرد و بنیه های اقتصادی، انسانی و اجتماعی کشور را از بین برد ابتدا مغلان یعنی چنگیز، هولاکو و تیمور به ایران هجوم آوردند بعد از اقتدار تیموری، دوره‌ای طولانی از ملکوت و هرج و مرج، ناامنی و منازعات طایفه‌ای و ایلاتی پیش آمد. در آذربایجان، فارس و عراق، آق‌ها با قره‌ها ستیز می‌کردند. شعشیان در خوزستان، شیروانشاهان در آران و قفقاز و بقایای تیموریان در خراسان طالب قدرت بودند. اوزبک‌ها در شمال، ها در غرب، ها در جنوب تمامیت کشور را تهدید می کردند در این دوره خاندان صفویه با اعتلاف ایلی به قدرت رسید در دوره صفویان جنگهای ایران و عثمانی درگرفت که ناشی از خصلت دینی و تأثب آمیز هر دو حکومت بود و سبب شد منازعات و تقیانهایی در قندهار، داقستان، کردستان، لار و غیره شکل گیرد که تا سقوط اصفهان در 1135 قمری ادامه یافت در دو نیم دهه پایان حکومت صفویان شورش‌های بسیاری روی داد. سنیان بلوچ کرمان را غارت کردند. سنیان قلزایی در قندهار شوریدند. ابدالیها در هرات، کردها در چرکوک تا همدان و لزگیها در داغستان شورش کردند. سرانجام نیز افغانها صفویه را سرنگون کردند. بعد از صفویان دو دهه از سه دهه دوره نادر پر هرجو مرج بود و رویارویی با مدعیان برای تثبیت قدرت ادامه داشت. پس از کریم خان، دوباره بی هرج و مرج و ناامنی شیراز، اصفهان و کرمان را صحنه منازعات و قحطی، غارت و کشت و کشتار کرد و جنگ‌های داخلی و خارجی اقتصاد کشور را در هم شکست. نظام آبیاری و زهکشی تخریب شد. و جا های بیش از اندازه اجتماعی فرصتی برای صبات و رشد باقی نگذاشت در دوره قاجار نیز نارامی ها همچنان ادامه داشت فقط در چهل و یک سال اول سلطنت ناصردین شا حدود 169 شورش و ناآرامی به وقوع بست در مشروطه از 1900 تا 1921 برابر با 1280 تا 1300 شمسی بیش از 50 بار تغییر در دولت رخ داد. در شهریور 1320 تا 1332 19 دولت جابجا جا شد که به طور میانگین هر دولت فقط اندکی بیش از نیم سال یعنی 225 روز برای تدبیر اجرایی کشور فرصت داشت. در این دوازده سال پنج مجلس تشکیل شد بر اساس مطالعهی که نویسنده انجام داده طول مدت حکمرانی در ایران بیدوام و کم بوده است. همانطور که ملاحظه می شود، با اینکه نوع نظام سیاسی در ایران سلطنتی و مادام العمری بود و حتی گاه از شکم مادر برایشان تاج گذاری می متوسط دوره حکومت هر یک از حکمرانان قبل از اسلام چهارده و شست و هشت صدم و بعد از اسلام یازده و سی و یک سال بود که از ناپایداری مزمن و نهادینه حکایت می کند. ناپایداری در حکومت بعد از اسلام بیشتر شد به طور تقریبی در نیمی از سلسله های حکمرانی دولت اسلامی میانگین مدت دوام هر حکمران کمتر از ده سال بوده تقریبا معادل با زمان ریاست جمهوری بسیاری از دولت های غیر و دموکراتیک امروزی که اصل در آنها گردش قدرت و انتخابات است. از این بررسی می توان استنباد کرد در ایران میل به ناپایداری و ناامنی نهادینه شده و به گونه شدید و عمیق وجود داشته است به نظر می رسد یکی از هسته های اصلی مشکلات ایران بی ناامنی و بینظمی نهادینه بوده است به همین سبب سپاهیگری قلبه می کرد و نظامیان ابتکار عمل را به دست می گرفتند اقتدارگرائی زمینه پیدا می کرد و از این رهگذر گذر انتخابهای معیشتی مردم شروع می شد مردم انتخاب می کردند چطور زندگی کنند تا باقی بمانند همان مردمی که در اسطوره ها، متون دینی و باورهایشان راستگویی مهمترین ارزش انسانی بود و دروغگویی را بدترین رزیلت می دانستند، به صورت انتخاب معیشتی اجتناب ناپذیر در دام انواع دروغ قرار می گرفتند. به این ترتیب، دروغ در این سرزمین هرچند دلیل اخلاقی موجهی نداشت، علل اجتماعی و تاریخی نیرومندی داشته است. برای ما هیچ وقت دروغ از نظر اخلاقی قابل توجیه نبوده و نیست، ولی بسیاری از ما میدانیم که بسیاری از ما دروغ میگویند. این همان است که در آغاز بحث اشاره شد. شرایط زیست تاریخی و اجتماعی گروه های مردم را در معرض دروغ قرار داد و آن انگاره های اهورایی نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند. منطق عینی و مناسبات واقعی به دروغ برای باقیماندن نفاق، تملق، بیاعتمادی و درونگرایی تمایل داشت. دوره تسلط مغل را در نظر بگیرید، در چنین وضعیتی و با بدبختی هایی که از حمله مغل ناشی میشد، به علاوه استبداد، بیعدالتی و نابرابری های فاهش آیا واقعا واکنشی جز درونگرایی منفعلانه می توانست وجود داشته باشد؟ برای گشه وسیعی از مردم و توده‌های های زعیف و رنج دیده خانگاه محلی برای تسلی آلام انسانی بود به این ترتیب اقتاب و مرشدان موقعیت پیدا کردند و تسلیگاه عاطفی مردم شدند و از دل این وضع سفوی قدرت یافت و باز تولید شد اکنون شاید نتوانیم ابعاد ناامنی تاریخی را تصور کنیم همه در دورهی زندگی کرده ایم که نسبت به قبل دوره سکون و ثبات بود است. هیچی از ما نمیتوانیم شرایط بی را تصور کنیم. میانگین عمر دولتها در پهلوی حدود 26 سال و در قاجار 19 و دهم سال بوده است. در این دو دوره اتفاقا ایران نسبت به دوره های قبلی شرایط باسوبات داشته است. در نتیجه به سختی می توانیم دوره های پر آشوب و بدتر از وضعیت های امروزی را تصور کنیم. با این وضعیت تاریخی، رفتارهای های ای مانند ملاحظه کاری، پنهانکاری، تلون، نیرنگ، سعایت، فرصت تلبی و غیره در میان قشهای وسیعی از مردم رواج یافت.